یه بین و قاهرین و مرسومین و عضو الله بود میتونه بکنه در اطراف با اصول ترخیصی جاری بشن از شد افساره به کفایه که اشکال نداره میشه این کار بشه و سرش با هم در حقیقت این مسئله دونستن که اصول ترخیصی چون حکم ظاهری هستن با قطعه به مخالفت اشکال نداره به خاطر این که در اصلاف علم مالی و تبدیل ایچان خوف از هر جهتی فعلی نشده از تمام جهاد چون جهت دارید که واقعا این یکی حرامه یا اون یکی حرامه چون خوف از تمام جهاد فعیلی نیست لذا خنافی با ترخیص نداره اون حکم واقعی چون فعیلی از جمعی جهاد نیست با ترخیص ظاهری منافض نداره و ایشون می کیفیت کهیفیت جمع هم بینه حکم ظاهری و واقعی همینطوره یعنی این کیفیت کیفیت جمع بین حکم ظاهری و واقعی هم هست بعد مرحوم استاد اخیراً اشاره کردن که ایل در فعلیت حکم تاثیر نداره حکم فعلیتش به فعلیت موضوعه همینطور که دیروز عرض کردیم دیگه شما میخواد علم داشته باشید نداشته باشید اون خوب فعلی میشه اگر موضوعش فعلی شد مثلا الان زواب شد اگر زواب شد وجوب نماز ذوق فعلی میشه با فعلیت موضوع خوب فعلی میشه اون مسئله علم تأثیر در فعلیت نداره این اشکال اول مرمومه استاد و این طورم اشکال کردن که این مرمیز بر این که فعلیت ما توضیح شاید این کلمه فعلی بودن در اینجا اینو نوع این اشکال وارد نمیشه به امثال صاحب کفایی خب حالا ای اصطلاحی که فعلی یعنی همه جه تمام تمام متمام باشه میتونیم به جای این کلمه فعلی منجب بکنیم بگیم حکم واقعی منجب نیم حالا فعلی منجمیه جه ها بگیم منجب این اشکال وارد نیست و اصرار به این که فعلی یعنی اون چی که قاعده موضوع باشه این همه اصطلاحه ما ندیم برای استصاذه نبون باشه اصطلاح این یه معنای فعلیت و باید دید که چه آثار مخرب بر این بار بکنند. و الا مجرد اصطلاح نکشی نده اونها ایشان مرحوم و استاد اشرافی که اصولا اصول ترکیسی با قطع نظر از این در اعصاب علم اكمالی کاری به خاطر که صورت با هم تنافی دارن و غبتی به مسئله تضاد و تنافی بین حکم ظاهری و واقعی می به این مناسبت ایشون یک توضیحی راجع به این جهاز فرموندن در کیفیت جمعه بین حکم ظاهری و واقعی که البته خب توضیح مفصلش نه از کار هزامن تو بحث زن با بهمیم این مناسبه با بحث ما در اینجا عرض می کنیم یعنی کلام و استاد رو توضیحی می دیم بر معلم استاد واقعا به جماعته منال اعلام، اتفاق شون اینه که تذاد بین احکام و فلسفه ها نیست. یعنی احکام با هم تضاد ندارن. وجود با حرمت چیز با و هم متضاد نمی شه. مال عمومی که واقعی هستند مثل سفیدی و سیاهی امور متخلله. در امور اعتباری تضاد معنا نداره. شما می توانید چیز رو تضار بکنید. اعتبار بکنیم به لحاظ هایی مختلف اون میشه شما مثلا بگید به اینکه زید اسد است به لحاظ شجاعت مثلا زید مثل بلانساس چگه به لحاظ مثلا فرسان و رفاداری همین مروانه یعنی نه که همار به خاطر و نازمی به خاطر مقاومت شما یعنی الله به اصطلاح زیاد تحمل زیاد میشه اناویل مختلف رو اعتبار کرده اعتبار مشکل نداره تضادی در امور اعتباری نیست از طرف چون در باب انشا اعتبار استاد رزنلا الله علیه اینه که انشا رو ابراج اعتبار نحسانی میدونن اگر بخوام تو انشایی یا تضاد بدونن با توی یکی از این دوتا باشه یا تو ابراج باشه یا توی اعتبار نحسانی ایشون ممناشون این طوری. خیلی معشی این مقرر اینجا توضیح کافی نداره ایشون میگه در مقام اعتبار چون اعتباری تضاد نیست تو ابراز هم تضاد نداره چون انشاء ابراز, ابراز اعتبار نفسانی این اشکال نداره تضادی متصورد نیست این تصوری که ایشون میبرمه تضادی که در احکام هست به دو نقطه هست یا به لحاظ مبدعه یا به لحاظ منطقه مبدع اسطلاحشون که منم از کردن مبادی و حب سه تا قرار دادیم اول مسلحه و مقصد دوم حب و با سوم اراده و شراحه ما اینجوری کنیم ایشون مبدع مرادشون همون مسالح و مفاسده ملاقات و منتها ها هم مرادیشون مقام انتصاله تضاد بین احکام و انفسه تصور نمیشه تضادی که یا به لحاظ مبدأ یا به لحاظ منتهی. به لحاظ مبدأ یعنی نمیشه که یک عمل قهدانی که از اجازه واجبه هم مصلحت باشه هم مقصده. این نمیشه. مثلا فرض بین که بگه خند و لا نماز بخون و نخون. خب بالاخره نماز یا مصلحت داره, داره یا مثلا قوم و لا و بالاخره یا مصلحت داره یا مقصده داره. نمیشه هم مثل حضر نشستن و هم محصد با هم چون نمیشه لذا جمع نمیشه بگه بشیم و نشیم با هم دیگه نمیشه این مشکل اول به لحاظ مقام مصالح البته ایشان مقام مصالح رو توضیح ندادن ما یک تفسیر خاص خودمون داشتیم از که اولا در کلمات اصحاب از نباشه. نداشت از مراد از مقام مصالح و مفاصل یا ملاکار جامعه عنوان ملاکا. عبارت از امور حقیقی واقعی که زیربنای مقام تشریع قرار میگیره ببینید یه امور حقیقی هست اگر اون امور حقیقی به ما و حقیقی بیان بشه این می‌شیم واقعیات همون امور حقیقی واقعی به عنوان زیربنای تشریح و بیان بشه این مناقضه فرق اینجوری یعنی فرض مثل اگر بگیم مثلا آب در وقت حواد به جوش میاد خب این یه امر یا مثلا میگیم خوشید چند ساعت کلو میکنه و میکنه ما اینطوری خوشیش اینطوری اینا امر هست اما اگر ما بخوایم از امر حقیقی دین بنا قرار بدیم برای تشریع که ما اون اینجوریه این, این میشه امر ملکی از ملکی اینه همون امر واقعی روی مثل مثلا الرجال قوامون علی النساء این تشریعه الرجال به ما به ما انفجاری ولی یش مقداری میشه آخر ماه عیسی دیگه میشه و ما خبلا الله و بعضی ها مانع این به ما خبلا الله امر تکمیلی به ما خبلا الله امر تکمیلی چون این تجزی تجزی تکمیلی است این امر تکمیلی آمده زیر بنای عریضال قوامون که این میشه ملاقات ملاقات کنیم یک امر تکمیلی که ترجمه اون امر تکمیلی میخواد چه بکنه اگر گفت ما هست خرشید هست نیم جعلی بکن صفق این ملا خب پایی نخایی این اما اگر آمد گفت نه مثلا هندوانه داره این فوارده مثلا فلسون سیب داره این فوارده این فوارده اونوها رو میگه به خاطر این که آروزی پس نیم هندوانه بخور مثلا این رو زیربنای تشریع قرار میده روزی دو کیلو سید بخور مثلاً, مثلا دو دانه سیب بخور اینو نیاز زیر بنای تشریع قرار. اگر آمد زیر بنای تشریع قرار نداد این میشه ملاک. پس ناوردیم دو تا ملاک متضاد در امر وحدانیت که افکار پیدا نمی‌کنه. این یه مشکله. یه مشکل به تصوریش مقام امکتصاله که منتهی باشه. از تصور ملموس‌تر خیلی زیاد از اصول این قاعده. چون در مقابل این یه تصور هست که خود اعتبار اصلا نمی‌کنه. کاری الا به این به عبارت اخرام اعتبارات برای اشیاء از قبیل مثل رنگ هم. چطور نمیشه دیوار هم صاف باشم که باشه نمیشه سفید باشه هم سیاه باشه اصلا اعتبارات از این قبیل نمیشه دو تا دوتا اعتبار سوشیگاه کار با اونجا هاتن. حالا باز اون بندس اما من نمیخوا باشه فعلا بحثی که الان اینجا یکی هم به لحاظ مقام امتصال یا منطقه مرال از مقام امتصال اینه که اگر گفت بشیم و نشیم این چی خواهر بکنه بشیم و مجیده بلخواه مقام امتصال چیکار؟ لذا معروف شده در انسانه متأخر بین اصولی تضاد بین احکام به انفرسه ها نیست چون اعتباریات ها تضاد برمنی تضادشون یا به لحاظ مبدعی یا به لحاظ منطقه این اصطلاح محرو منطقه مقام انتصال چون نمیشه اگر این مبنه رو ما قبول کردیم در جمع رین حکم واقعی و ظاهری ما مشهر نداریم دیگه و با هم باشه مثلا فرسوی این لباس شما نجسته شما الان نمیدونید این پارچه ندیدانه لباسی این پارچه نجسته شما قبلن اساس و تارج داریم کنید که اشاره فرمونده اکتاره خب به اصلا مزاره فرساده دیگه از اون طرف شارعه گفته این ملابی بادم نجسه از اون طرف شما موقعه اساطوطها رو جالب کن. نجس واقعی که شما میبینید اساطوط وقت علمان وخ... که تأثیر در واقع در احکام نداره پس در اینجا شارعه دوتا تو کرده از یک طرف بخته نجس بیشتر از یک طرف بوده صاحب صلیفی این تضاده بین این دوتا روشتید به لطه شاره در اینجا چطور حکم طالبان صندوقی این با اون نگیتی که خودش رو فرمونده با هم تضاد ده. جواب استاد این طوریه. این روشن شد که تضاد در این احکام زاده جواب استاد از جواب بیشتری داره اما اجمالا میگه ایشون اینجا اشکال نداره واقعا نگیت سوش ظاهرا کار باش این دوتا اش... چرا؟ چون اشکال دوتا بود دیگه یا مبدع یا منطقه اشکال این بود دیگه. ما این هر دو اشار در اینجا وجود نداره نه به لحاظ مبدع مشکل داریم نه به لحاظ اما به لحاظ مده... مبدع خب و شما میشوه به مبدع مشکل نداره اگه پاکه یه منات داره اگه مجوس یه منات داره دو تا منات دیگه وقتی دو تا منات کردن سوالو صدا می به لحاظ مبدع تزاید پیدا میکنن جواب این که دو سینگ میلاد داریم. یه ملاک در خود اون عمله در خود متعلقه این یه ملاقه. مثلا وقتی شارعه حکم میکنه نجس خودش داره یه ملاکی نجسه توش نماز نکنه این ملاکی داره این ملاک در خود عمله یعنی این عمل مقرب نیست نمیسکوندن در این لباس مقرب نیست اما ملاکی که در مورد حکم ظاهری هستنگی تهارته این ملاکش تابعه واقع نیست چون حکم ظاهریه این ظاهرا دیگه این ملاکش در خود پس دو فدوسنخ ملاک شد یک ملاک به لحاظ متعلق و واقع که اون نجاست بشه یک ملاک به لحاظ تقسیم ترخیص در متعلق تسهیل بر متکلف بود در این ملاک توی واقع نیست یعنی این ملاک نمیشه خود نماز خوندن در این لباس به ما اینکه نماز خوندن در این لباس ملاک داشته باشه ملاک تا نه لباس مشکوک ملاک داره نه این لباس عنوان مشکوک خود این جعل ملاک داره نه اینکه که متعلق ملاک داشته حالا این تقریب ایشان من یه تقریب دیگم میکنم تشان واضرتر باشه ایشون به طریق آه تقریب داریم هم هم که همون رو من ما در وقت ملاتانی را عرض می مسلحت سلوکی رو که مرموم شیخ فرمودن اینطور تصویر کردیم حالت نه شیخ فرمودن آنم اشکال کردن بشه و ما در اینچار تحریفشون برقاهادامه توضیح خواهیم داد خلاصه مسلحت سلوکی رو اینجوری گرفتیم که چطور مسلحت سلوکی با مسلحت واقع تضاب نداریم آخرین ما یک مسالهی برای شیفی نفسه داریم یک مسالهی داریم که برای هیئت اجتماعی میاد. این دو تا مسلحت یکی نیستن مثلا مثال که کرارن حرف کردن شما این دیوار در نظر بگیریم یک مسلحتش اینه که آجورهایی که در دیوار به کار مورده شده محکم و سفت و درست باشد خشکی نباشه این یک ملاکشه یه ملاکش هم اینست که این دیوار صاف باشه صاف بودن دیوار رابطه آجورها و همه محکم بودن خدا آجورها اون حریقت اون واقع خود دیواره در قسم ممکنه دیوار کاملا آجورها محکم و صفت و برس و برس کنه آهلیات اما اما کچیدن یکی جلو به عقل اون حیعت اجتماعیش کچید ممکنه به انت آجورها دیل خاکی هستن گرچی آجورهای برد اما صاف دیوار اورغن بالا دیوار صافه اما موادش مواد صالبی نیست پس ما بگیم ببینیم دو تا ملاح داریم اصلا دو نهره ملاح داریم یک ملاح در شیفی نفسر یک ملاح هم برای حیعت اجتماعیه برای جامعه مثلا فرصان خود شاره مقدسیه ملاق قرار میزه این چیز ملاقی با خون رو خون یک حسافتی داره از مقاله بودا میکروب داره ویروس داره این ملاقی با خون باشه مثلا ملاق نجا سرزن اما از یک طرف شاره میخواد شریعت سهر باشه آسان باشه این سهولت یک امر اجتماعیه اصلا این ملاق متعلق است به هیئت اجتماعی به مفردات نمیخوره یک ملاک مفردات میخوره یک ملاک به حیات اجتماعی میخوره این از اون قضیه است ملاکی که در این مصلحت سلوکی که از مصلحت گذاشتیم مس این که مرونالیه اشغال میکنه که سلوک عین محسوکه چطور میشه سلوک مسلحت به داشته باشه محسوزه نه, نه. مصلحت سلوکی رو مصلحت اجتماعیه به اجتماع میخوره مثلت مثلی به واقع میخوره به حیعت اجتماعی نمیخوره به اون چیزی که میخوره به واقعیت ما اینجا اینطور طور شارع چاره یه ملاکاتی داره این کار که با خون ملاقات کرد تبخونه اون ملاکات این لباس مثل داره به خاطر ملاقات با خون. از اون بر یه ملاکات دیگری هم هست نمیخواه چاره داشته باشه هر خودش دینه اون ملاک بر مکلفه شریعت سمه باشه شریعت سهله باشه اون خودش یه ملاکیه اما... برای؟ که و واقعی من علم واقع داشته که این خلاف راضیی که نداشته که من ما من این که همه ارد کنم تحجیب که نه ببینید اولا کلمه حتی تعلمه و برد توضییشون میدن ما یه قاعده ای رو که عرض کردم کردیم هر حکمی که مقیابه علم بشه قاعداً ظاهریه این قاعده هر حکمی که قاعدش علم باشه این ظاهریه اگر میخواد واقعی باشه باید قاعدش مثل نسخ باشه مثل کلوشه علم مصرح حتی یردیه نح این واقع ما حاضر بگه میدونه حکم میکنه به الیه حکم میکنه. اما در نظر می گیره همین این حکم ظاهری با واقع منافات نداره یعنی من بب... چی اصلا شما اصلا مثلا من... بحث, بحث طولانیه که کجا هستن؟ اصلا... مثلا در اما امارات ما حکم نداریم که این بحثیه اصلا نداریم این خویان فهمیم ما رو عرض در محل خود حالا در امارات یه بردی های شد اون توضیح هم نیخواد که این جران با در توضیحش لگم یه بحثیه این که تا حکم ظاهری کجاست مثلا اده از بقای اهل سنت گفتن مثلا معده امارات منباه نسان یا فتوای مشهد بیشتر نظر صفت بود. الان بنایه اصحار مایه ما که نه فتبای مشهد جعل حکم ظاهری میکنه نه را. اون بست دیگه که کجا حکم ظاهری هست نه اون جایی, اون جایی که حکم ظاهری هست قدر مسیح در اصوله, در در اصوله. ها. اصول هم اینشان ها توضیحاتش بعد عرض ارض خواهید اصولی که ما داریم بعضی اصول اغلائی هست مثل اصاطر عدم مثلا میگن آزه ازدواج کرد بچه دارست میگه خبر ندارم نمیدونم زهرن نیست به اطلاع ازمال ال این اگر اصول اغلایی باشه این تو جل می فسن. اصول اغلایی سر تو جل مهممه اصول اغلایی که شاره رو امضا کرده این اصول اغلایی که شاره امضا کرده اگر با عنوان اغلایی شده حد اغلاییش امضا کرده اونم جل نداره دوم و سهوم اصول اغلاییست که شارعه امضا کرده اوسع یا از یک از اونجا جهر اونجا مثل قاعده فراغ مثلا قاعده فراغ را آرخوی اصل اغلایی میدونن جهر شار... شرعیل هم برمزه اصل اغلایی میدونن خب جهر نیمون نه دیگه نه نه فضیه نه داره طرصه نه داره آرخوی تقلیق آرخوی میگه قاعده وقت لجهی که انسان متوجه باشه. اگر کاری رو کنی، اگر جانیش رو توزیع شما که من بزرگش اگر اصل شریح هم، اصل اقلایی داشته باشه، اصل شریحی به امدادی و اقلای جل آمده، او همه اصل اقلایی، جل دوست اگر اصل اقلایی داشته باشه، شار اوزار دایره اقلایی، اونجا میشه شار، اونجا جل با، جل بکنه همین قاعده ترا قاعده ترا رو باید مثلا ملاحظه فرمود اختلافی از بین هاروسی به دیگران آیه سری که اگه شما یه مقاله بنویسین یه کاری انجام بدین حواستون جمع بود بعد شک کردین فلان جزءش ناقصه بدید خب من حواسم بود دقت انجام بدم کار درست لذا قاعده غلایی در جایی اشاره میشه که انسان متخصص باشه این امر وقت ریوایات بنای اتهام ما که روایات اوثق شما مخاطب منتظر باشین نباشید. شما نماز خونین بعدو شک کنه رکو گره توی خود نمازهاستون طع بده جای دیگه رفته بود آرسو ها اگر در دین عمل متوجه نشه قاضی فرا جاری نمیشه دقت بکنید مشو کوغه ها ما هم بنده معبودانیکه فایده حرام جاری میشه اگر این رو قاظم شدی این میشه شرعی چون مقدار شرعی اوسع شد از مقدار قحلاوی درست این چند تا رو جایی که این کارتن شرعی صرف باشه. قطعا در اونجا می‌گاردن اصلا اساس و ثاره. اساس و ثاره، این دیگه که این عکسو اوغعلی با و ثاره باشه. این یک به نظام در بحث اساسات در بحث اجزا چند تا بحث دیگه مناسبت توضیحات کافی بحث کردیم، چون شرعی صرف هم هست، قطعاً باید رسانه شش سال لسان یا یابود باشه. این از این امکان نداره. چون شرعی سر محمد این اصول رو اینجوری محصوصا در شرح اگر آهان یادش که می پسند دیگه شرح یه باتی که خواهی بحث ایزا میگه که اصالت تهاره و استثابه ها و دیره ما رو نر اصول و نحوه هم آمده که در شرح اونه عبارت هم روشن نیست که مراد کفایشی الان آیا ما اونجا از کردیم اصالت تهاره تو جرد داره چرا اصلا اصلا قلعه وقتی جل آمد چی میشه نتیجه خوب دفت بکنی باید ناظر بیا قانون دیگه باشه طبیعتش این خیلی طبیعتا پانونی ناظر به چیه لا الله به طهور نماز باید با سهارت باشه از اون روی خودشه این لکه تاهر. این نازر باید شه برد بردان نظارت بردان نظارت یعنی چه؟ بردان من هر روزونی از این نمیشه مییشه چون شرعی است نمیشه اصلا من عین اصول بانویی دارم از خدمت بعد این باید لازمه اون باشه اگر گفت مثلا کل طاهر المجلس را اجرا کل کل میشه لك طالمی آب کافی نه احساساتاری بخور اصلا غیرت راهی نداره وقتی یک عصل اغلایی نبود شرعی بود باید نازر به احکام خودش باشي غیر از این راهی نداره اسلا دقت کردي ایر گف آب پاک بخور با مثلا توی پاک نماز بکون تو لباس پاک تواف بکن بعد بگو کل شلک ظاهر ینو یعنی پاک یعن توی من نماز بکون غیر از این راهی نداره دقت فرمد پس بنابر این ما این البته از, از کردم ما رو توضیح دادیم اقتسهار قبول نکرديم نحوه ما که در آمد اما هم داره که معنی از چیه ما در موزه توضیح داریم این اصول رو تقسیم بندی کردیم یک اصول اغلایی صرف اینها اصلا توی جرم منادره اصول اغلایی و شاره هم جرم کرده به همون فهم اغلایی این ها جرم منادره اصول اغلایی شاره اوسع یا عزیز از دائر اغلایی یه توش مناده رو جرم رو لب رو میشه چهار کەسفی که عقلان نیست اصلا ثاره که هیچ عقلانی نیست شرعی است اینا قطعاً تو جهنم داره غیر از جایی که جهنم ظاهری باید میشه. اینا قطعا وقتی با كل شیء انطاهر قطعاً جهنم غیر جهنم اون نیست اصلا میشه درگاهونی خاص سناورین كل شیء لک حلال البته كل شیء حالا اگر بر اثر ذلکه واظع بخوره كل شیء لک حلال چون خوی رو عبوردم من بعد متعرض این جانم متعرض میشم چون در این حدیث ذکر کردم به خواننده شه من یه توضیح اصلا به کلش این که حلال از رو کردن بعد ورده بچه‌ها خوبی میشین از شادمز نشا رو درسته حالا برام خیلی سواله پس یک آیا به این حکم ظاهری و واقعی به لحاظ ملاکات تعارض هست خیر نیست چرا چون حکم واقعی تابع ملاکات واقعی یعنی حکم واقعی همون امر تکریمیه بدا کردید حکم واقعی ملاکش همون امر تکریمیه که زیر تشریع تشریه اما در حکم ظاهری ملاکش خود جعله ملاکی نداره. ترخیصه تسکیل امر اگر گفت کلشه این لکه تاهره حتی تعلق سرش هم واضحه چون احکام ظاهری مقیدن به جمع یعنی بهتمادان انسان نمیدونه به علم بخلاق اید در ملاقات کردیم نداره امکان سختی تو ملاک داره؟ از که اندام توزیج هستن؟ ملاقات ملاک می واقعی خب که زیربنای میشه چه تأثیر در ملاک داره؟ مش... استثاب رو کم چرا؟ حالا مث بسیاری استصحاب رو استصحابیم عدلی استصحاب که وارد شده. چون به نظر ما شد عقلا شک در مختصری جای نداره توسعه در شک در مختصریه این اما خب این حکم ظاهری اگه خلاف واقع شد درست میگه مرتکب مقام انکساله ده برای جن ملاقه الان بخصی جره شاره از یک ترک بخصه این نجیسه شون با خون ملاحظ کرد از یک ترک بخصه تاهره تو شما نمیدونی این دوست جره چطور جره بکنیم جره نجاست تابع ملاقات واقعی است حالت تابع ملاقاتی در خود جره این دو دو با افراد کردن بله کار بله کار بله کار بله کار بله کار تو آبره کنید سوز در از اون ها این شرعی که هستید حالا ببینید شما ممکنید کمی روش باشه تکبیلا پاک میزد یا رنگ سابو اما شرعا پاک ها. اصلا خدمتون که مگه این شما اگه این دستیم وساسی چی پاک همه شدیست روشن شد آشیم ها ایشون ها بگم شما, شما میگن این صبح در واقع نجس نیست در واقع ملاقی با یا بول نیست میگه اگر مراقی بادم بود مقصده نداره. چرا؟ پس چطور شاره بوده زهابن پاکی؟ جواب اون مقصد تو خود صحبه واقعیه دی. این ملاد توی حکمه میگه برای ترخیص برای تحصیل بر حمل شما برای این که در فشار نیاخی من میام اون رو به حساب زهاب قطع کرا روشنیم چیه این مقامش مقام ولی دار اون ملاک واقعی مغیر به علم و جهل نیست این ملاک چون تابع ظاهره تابع جهل مغیر به مجهل اون ملاک تابع علم و است پس تو مقام ملاکات با هم تعارض نداره تو مقام امتثال هم تعارض ندارن چرا چون تمام آدم شما حکم واقعی میدونید که اون ظاهری نیست که امتثالش بکنه شما چه حکم ظاهری حکم جزاب درسته به واقع نرسید پس اینا با هم مثل بشین و نشین نیست که شما مشکل داشته باشون اگر میدونیم با خون ملاقات کرده اشتناب میکنیم اشتناب نمی کنیم دو تا حکمه یکی در مقام امید یکی در مقام واقع در مقام انتصال با همدیگه چون طولیت دارن در طول هم هستن با هم تعارض پیدا دارن این راجبه جمع بین حکم زاهی و واقعی یک لحظه اما این مطلب تو ازمه نمیاد. خلاصه آ پس شما در شبهات بدویه اگر شارعه و که به سهارت کرد شما یک سال اساطو تارو جاری کردید یقین یعنی دارم بعض نهایت نجس کنید اشکال ندارم نه در مقام ملاقات با هم تاروز دارم نه در مقام منتها و انتصاب اما در علم نمیشه این کارو بکنید من علم دارم که اینجا ملاقی بازمیش تو بگرم اساطو تارو پیشه دیدم خونی افتاد دیگه جای اساطو تارو چون بازیدون تکرار کنم بزن و فهمونم بگیم که چون علم اجمالی در این جهت ایش فرقی با علم تفصیلی نداره <تصفح> برای که آقا آقای خویی برن اقاله بگو کنم نی <اقلات> نی نی تیش می آقای خویی قاید عبارت آقای در اینجا با بحث برایتش اشتغال شرق بکنم حالا من خیلی می‌خوام وارد ها هم بشم اون دیگه خیلی طولانی چه بعد از کارو بعد ما طولانی در مقام در هم قرار می‌گیرن رو من به این معنا چون ببینید جهنم باید بخود واقعیت اینجا خودی رو جهنم جهنم حالت ادراکی نیست les ملاقاتش یک ملاقات خاصیه ببین ما وقتی ملاقات از ملاقات این حقایق واقعی است اصلا عزت صد یه ملاک داره عینت یه ملاک داره کتاب یه ملاک نه اما واقعی است اصحاب ظاهری اینو مقام جهل ببینید به طور کلی و مقبوله مقبوله. و خسارت منه. این مجاری مقوله‌ای مقولات واقعیات مابوظ این موجر خصاص تربیه منه درست می‌گه این خصاص فردی نمی‌تونه بیاد رو واقعیات تأثیر بذاره پس اگر جهل می‌خواد بشه روی جهل من اون جهل باید مناظر با حالات ادراکی من باشه نه با واقعی و لذا ما نه ما به جای این کلله که ایشون فرمودن مصلحت در خود جمع در خود حکومت ما به این گفتیم مصلحتی که متعلق به جامعه میشه مصلحتی که متعلق به عامه مسلمین میشه به چه جهات؟ به جهت تصحیح به چه جهات؟ به جهت مثلا این که و لازم نباشه به چه جهات؟ به جهتی که مردم به کارهای دیگه شون برسند هی hey, دنبال این بیایستن این دباست با خون ملاقات کرد نکرد که خب کمی زنگی رو برمیزنه برای این, این زیر بنا بشه برای اینکه مردم بپیکه کارایدگی بیایستن کاراشون را انجام بدن روشی پیدا بکنن جامعه انتومل اعلوم به اصطلاح با پیدا بشه. پس این نکته اینه این دنبال اون مسئله ملاقات واقعی این خلاصه نزله مرغوب است. مقدسی اش دی تعارض بین من. طولی بودن مطمئن تاردیس اون به خود مقام جل داده اون کمه معنوم شیخ انساری هم هست معنوم شیخ انصاری طولی گرفته گفته ما یک جل داریم خورده مثلا به ملاقی دن این جل گفته ملاقی دم نجد دو ما, این, اولا ما این, این جل داریم بعد این خودمون ما الان جل داریم به این خورده که پیدا کردی بعد شاره نیزید در ضرب جل خاتید پس اینا رتبشون طولیه این طولیه اون تصویل است و تفسیل است که مرحوم شیخ انساری بین منا که موضوعش متأخر از موضوع این هم حالا یک تفسیر که رو ازمید این راجعه به که بعدم اشکال کرده مثلا شاگر ایجونسی دو صاحب کفایی اشکال کرده حالا بعد اینشالله نقطهش رو ازمید کنیم که این نکاس کافی هست چونه همه رو نمکنیم اینجا بکنم. این راجعه به جمعه حکمه به این و واقعی، و مسئله اینکه این اجمالی کافی نیست برای چم بله اشکار صفر کافیه که در شوبه غیر محسوب چی میگی خب در شوبه غیر محسوب اگه اسراف مثلا 20 تا باشه شما نمی شه احتساب بکنید بلکه علم تحت تر... به حساب کرده حالا 20 تا اینا باقیه دو بهش شما در شوبه غیر محسوب چی میگی من استاد میگم بله اشکار شما در شوبه غیر محسوب جاریه و ما هم معتقدیم هر دی بین شوبه محسوب غیر محسوب نمیکنه انتعامت منجزه اینج یه توضیحی میخواد تو خود خودشون توضیح بده بگیه واضحه کرد یه بحثی هست که چرا شبهه غیر محصول خارجه یه بحثی ان شاءالله می‌آد بعدو و یک بحث. بحث اینه که معیار غیر محصور چیه اصلا معیار غیر محسور 20 طرف باشه 30 تا باشه 50 تا باشه 100 تا باشه حالا چرا شبهه محصول خارجه مئیار غیر محصول و محصول چیه؟ اینشالله خواهد آمد که ما عنوان محصول و غیر محصول تو رو نداریم ما هم عنوان نداریم برزی ها گفتن شبه غیر محصوله به اجماع خارجه اگر زمین این باشه هر جا اجماعی باشه خارجی، اصل به قضا محصوله بند کنیم ما اجماعی در نه. هست گفتن ما عنوان محصول و غیر محصول نداریم خروج از محل اطلاع داریم. هر مقداری که مرجع باشه که خروج از محل اطلاع بشه باشه از غیرمحصور یعنی اونی که از محل اطلاع خارج اون به خاطر نه عنوان غیرمحصور با عنوان خروج از محل اطلا اگر از محل اطلاع خارج بود غیرمحصور ما عنوان غیرمحصور نداری و مثلا در اینجا فقط در این ساخت سازه این مشارکتی یک نقطه از هزار نقطه ناجسته خب محل اطلاع محل اطلا این محصوله نقطه نقطه عدد نیست من میدونم مثلا یک وجه به از این کل این زیر زمین نجسته خب میشونم از همه اشتراف کن. همه محل افتلاف پس این غیر محصول نیست نقطه نقطه عدد نیست نقطه نقطه محصول نیست نقطه نقطه خروج از محل افتلاف خود مرحوم استاد عقیده شون همینه این, این مراد من از عبارتیشان از عبارتیشان اینطور میتربارد و انما و اما نحن ففي فسحه من هذا النقل ان لا نقول بعدم الفرق بين قله الاشخاص اینکه تا باشه ده تا باشی یا 20 تا باشی یا تا, تا, تا, تا, تا نه فرق نمی نه لو كان خشمم مالا يمكن ال ان احراز به مقداری باشه که امکان قدرت انسان قدرت نداره یا مثلا اگر ضرر باشه یا اگر حرجی باشه پس میاره در شبه غیران حساب به نظرمون ایشان هر جایی که اصلاف و مقداری باشه که انسان خود در انتصال نداره یا ضرری امتصال یا حرجی اینا خارج هم یکی هم هست مسئله ابتلاب و عدم ابتلاب یه بچی هم هست خود ما بیشتر بوقعالیم اینشالا بردار کاری کرد کسرت اطراف به قبلی باشه که انتباه با اون عنوان در این مورد موهوم باشه چون احس کردیم موهم و درده زریف از احتمال پیش و اقلام نیست ما نقطه فنیش رو نیم میدیدیم که اینجا به محلش آدم به مقداری درست اطراف حالا دیگه اون به سر کسرت اطراف و قللتش که احتمال انتباه ضعیف باشه موهوم باشه در اونجا اون احتمال ضعیق منجز نیست که خواهد آمد پس بنابراین اشکال حساب کفایی بین که در شوهر غیر محصول چی وارد نیست شوهر غیر محصول و محصول نداریم نقطه نقطه دیگری یا اجماع از کماخی یا خروج از محل افتلاح کماخی یا قدرت و عرش و اینجور چیزا یا موهوم بودن احتمال انتباه کماخی به همون جرال محل خواهد آمد پس این وارد نیست، و انصاف قدیه این مطلب که ما در باب تنجیز علم اگر جایی قاتل بودیم که این منجزه فرقی بین علم اجمالی و تفصیلی نداره میه. چرا؟ چون این همین نقطه با توضیح که ما از کردیم علم ما در مورد علم اجمالی تفصیلی است اجمال به لحاظ انتباغه انتباغ نمیاد تو مقام تعلق تکلیف و تنجز تکلیف تأثیر بگذاره اون تاثیری نداره تا ما دیدیم یک قطعه خون آمد تکلیف آمد تا من دیدم نوشتم در کتاب نظر کردم وجود و فاید نظر آمد احتمال انتباه و به اصطلاح احتمال عدم انتباه اگر احتمال قوی باشه با اون خصوصیاتی که بعد عرض خواهد کرد در این صورت منجز خواهد بود این علم تحصیل گذار خواهد بود یه توضیحات دیگه به نه به دیگه، دیگه‌ای دیگه، دیگه که بعد بعد از اونجوری چون من فنانم بنده که عبا ایشون موقعی باید نتیجه نادری ارجو کنه بعد از ایشون ایشون متعرض کلام شیخ انصاری شدن البته ایشون نباید متعرض بشن چون ایشون قائلن که امکان نداره اصول ترخیص جایی بشه میگن اگر قبول داریم امکان داشته باشه شیخ انصاری حرفش که خود ال سنه اصول عبا شما هم حال دیگه السن اصول عبا ندارن این خلاصه بحث آینده ان شاء